حفظ فهم و دانستان قرآن مشان شانستد دوستان محترم امروز ما عظمت قرآن چه قسم میتنیم که درست درک بکنیم مشکل اساسی ما است که ما وقت مزمون شدیم اسلام ما به شکل ارسی و میراثی بر ما رسیده و ما تابال نتانستیم که حقیقتهای قرآن از مشانه به شکلی که کسانی که در اوایل به دین مقدس اسلام مشرف شدند شاگردای مکتب نبوت بودن اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بودند قسمی که اونا از قرآن استفاده کردند و تانستن که امپراتوری فارس کاملا سرنگون بسازند و امپراتوری روم تسلیم بسازند تا که بر مسلمان ها چندین قرن تسلیم شوند و دین مقدس اسلام در قلب اروپا بیرقش بالا کردن و چندین قرن بالای اندلس که امروز نام اسپانیا یاد میشه مسلمان ها حکومت کردند امروز فرق بین ما و بین از اونا چی هست تا وقتی فرق نتا و تا وقتی که ما سوال نکنیم که تأثیر قرآن از امروز در جهان چی هست تا که درست درک نکنیم ما عظمت قران را درک در نمی‌کنیم امروز در جهان چه مشکل است مشکل اساسی جهان امروزی است که وقت انسان‌ها از قوانین انسان‌ها پیروی کردند امروز در جهانی که او را جهان متمدن میگن، در حالی که ما مسلمان ها بعد از تحقیق مطالعه دریافتیم که تمدن بلکه او را نامش باید جاهلیت عصر حاضر یا جاهلیت جدید بنامیم این قانون را که تطبیق کردن چه نتیجه داشت؟ نتیجهی بود که امروز ما خود ما از زبان خودی از اینا میشنویم که میگن ما امروز در دنیا 45 میلیون در سال 2007 45 میلیون مبتلا به ایپس است و این مرض است که تا به حال دکتران نتوانستان بر دوایی بسازند یعنی انسانی که مبتلا به ایتس شد در جمله حلاق شده هاست بگونه کدام من آقشن امروز از لفنگ میلیون مبتلاب عیس آیا از کشورهای اسلامی جروع شده و یا از کشورهایی که ادعای پیشرفت و ترقیم می کنن این واقعیت است که از کشورهای از اونا ما انتقال می امروز در پارلمان کشورای اسکندنوی در پارلمان کشورای اسکندنوی سر موضوع 52 و دو فیصد اطفال نامشروع صحبت میشه که آینده ازیا چه قسم خواهد شد؟ شما فکر کریم در جایی که 52 فیصد از اولادایشان از طریق نامشروع به دنیا آمده باشند و مشکل پارلمان امروز سر از این نقطه می چرخن. مشکل علمای ما در اقوانستانی که در اون مقریه و در اون منطقی که هستن گرد گردی از امی می ولی اگر از قریه خود برایم جهان مطالعه بکنن باز نمی‌فهمن که ای قرآن عظیم چی چه عظمتی داره و کسانی که تشنه قرآن هستند در دنیا برای از اونا باید ما از اینمی قریه های خود نسخه بتیم و دوام بفرستیم اگر اصحاب پیغمبر به این فکر می که ما یک نماز ما در کعبه شریف به بیشتر دیشتر از نمازی که ما بریم در در افغانستان یا در،, یا در ترکیه یا در چین و یا در پاکستان بخانیم است ما تو امروز مسلمان نمی بوده ولی اونا به خاطر ازی که اسلام بر خود انسان نیست که در فکر خود باشه و قریه خود باشه بلکه باید در فکر مسلمان شدن جهان باید باشه از این خاطر در هیچ قریه دنیا که انسان سفر میکنه در اونجا نمیرسه که قبر از صحابه کرام نباشه بنابراین ما وقت میتونیم که دین مقدس اسلام در جهان نشر بکنیم که ما از قریه و منطقی خود پا فراتر گذاشته مثل اصحاب کرام و مثل مطابق آیت قرآن که معرفی معرفی میکنه که بر آلنیان است خدا معرفی معرفی میکنه که رب عالمین است پیغمبرم عریفی میکنه که این پیغمبر رحمتا للعالمین است اونا دانسته برن اسلام هم. امروز متاسفانه تشنگی در جهان غرب و تشنگی در کشورهایی که از غرب پیروی میکنن بسیار زیاد است کمونیزم تدبیق کردن در 21 جمهوریت اتحاد شوروی 70 سال نظام کمونیستی تدبیق شد ولی بالاخره مجسمه لینن خود کمونیستا در رومانیا از وین بردن خود کمونیستا نظام کمونیستی را استفراق کردن و گفتند که رای حل بشریت امروز در نظام کمونیستی نیست ولی امروز ما در افغانستان داریم کسایی را که آنوزم استفراق نظام کمونیستی استفراق شده را در اروپا یا اونمو استفراق شد دوباره میخورن و دعوت به کمونیزم میکنن داروینیزم در اروپا رد کردند و گفتن که اندیشه داروین که اصل انسان به شادی انتقال میترد گفتم که ای اصل باطل است و امروز ما داریم کسانی که پیشتر مثل که استاد میربانی کرد کسانی هستند که به این اندیشه باطل دعوت میکنند در حال که قرآن عظیم و شان با صراحت گفته که و لقد کرم نابنی آدم ای انسان ها ما بنی آدم کرامت دادیم اگر ما بگوییم که اصل انسان از شادی است، هست پس کرامت انسان از بین رفت کرامت شادی ها پیدا کردن چون ما کاپی میشیم و اونا اصل میشن امروز کسانی که در جهان قرآن درست مطالعه میکنن رای دگی نمیفن بر تمامی امراض خود امروز اروپایی ها میگن که فامیلای ما تکت تکت شده. فامیلای ما تکت تکت شده پدر با پسر دختر با مادر هیچ اثبات ندارن همه گفته آفرست که این چه که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم هیچ مهره برادر به برادر دارد هیچ لطف پدر را به پسر میبینم پسران را همه جنگ است و جدل با مادر دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بدخواه پدر میبینم این مشکلی که امروز در جهان است رای حل چی هست کلی اینها اعتراف میکنن که امروز یگانا قانون که میتونه که بدبختی ها را از بین ببره قرآن عظیم و شان است ولی آیا ما که قرآن عظیم و شانه بر جهان تقدیم بکنیم در یک کنفرانس یک روسی خیص استود شد و روی به طرف کسانی که نمائنده های مسلمان ها بودن کرد و گفت از برای خدا شما مسلمان ها پدر مرا کافر کشتیم همه اگه گفتن ما چرا قدرتون کافر بکشیم گفت ما وقتی که ترجمه قرآن به دست ما رسید و ما قرآن مطالعه کردم ما مسلمان شدم و ما متعقیقن هستم که اگر ای قرآن به دست پدر من میرسید رو هم به ای قرآن ایمان میورد ولی شما مسلمان ها جیبایتان مبالای ما هستم در موترهای شخصی لکس, لکس از ما سهر میشین هر وسیلی که ما کشف کردیم بر شما مسلمان ها روام کردیم ولی شما مسلمان ها هیچ چیز ندارین یک چیز که او رحمت خداوند است که بر شما داده قرآن یزیم و شان است او را خود شما مسلمان ها بردین در تاقه های قبرستان ماندین شکست خود شما مسلمان ها وقت شروع شد که شما مسلمان ها قرآن که کتاب زندگی است بردین در قبرستان ها ماندین شکست شما مسلمان ها وقت شروع شد که وقت بر پدر کلانتان کفن میخرین چند متر کفن برای قرآن شان هم میخرین و قرآن با کفن پوش میکنین شکست شما مسلمان ها وقت شروع شد که به این وضعی که قرآن مانای شب فامین تنها خدا به الفاظ قرآن مصروف کردین نیست که الفاظ قرآن عزت خدا بیشت داره قرآن باید بخوانیم. افتخار بزرگ حفاظ قرآن هستند. ولی مشکل اساسی مسلمان ها در این نقطه هست که همیشه در مسابقه حفظ قرآن مصروف هستند در روخانی قرآن مصروف هستند در زیبایی های سوتی قرآن مصروف هستند لیکن یک روزی در فهم قرآن سعی نکردن از این خاطر است که ما حتی علماء ما بیست سال مسجد مجید امامت میکنیم چهار تا بی نماز خود نماز ساختن رو میتونیم سی در مسجد امامت میکنیم ولی نتانستیم که از هری خود ساز و دول و رقص و دختر رقصاندن و پسر رقص رقصاندن و دول بسازید چرا علتش چی است علتش که ما مشکل فهم درست قرآن داریم ما از جهان خود بخبر هستیم یک نفر برنا آشوکوللم رئیس کلیساهای های افیپ این میگم میگه در من بسیار امکانات زیاد بود که مردم هم باید به مسیحیت دعوت بکنم. ما در لندن و آمریکا درباره ادیان درس خواندم، عمام کتابایی که با خدا نسبت داده میشه اینو مطالعه کردم. من را چی مسلمان ساخت؟ قبلا پیش ازی که کرآن باز بکنم پوش کرآن مرا مسلمان ساخت پوش کرآن. امروز اگر پرسان کنیم که در پوش قرآن چی ایجواز وجود دارد؟ اگر یک سوال مسابقه‌ای ما باشه شاید به با میلیون‌ها ها نفر یک نفر هم نفامه کافر کافره چه تو پشت قرآن مسلمان ساخته نگه پشت قرآن مرا به خاطر ازی مسلمان ساخت که تمام کتاب هایی که به خدا نسبت داده می شد نگه پی کلام خدا در پشتش مؤلفش انسان نشته بود انجیل میگفتنی می خداست. این کلام خدا زفا ششترست معلفش مرقص معلفش متا معلفش یوحنا کتاب های اون دوها را نسبت میدن کتاب خداست. زفا ششترش نشست معلفش انسان است در تمام دنیا گشتم یگانه کتابی که معلف انسانی نداشت نشاب تنزیل و مر رب العالمین قران عظیم شان گفتم که لا اله ایلا الله محمد رسول الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر دیگه مسلمان شدم مسلمان تورا مسلمان شدم نه وقتی میگم من مسلمان شدم یک لگ و نفر هزار مفرکت نماز سلمان شد و کتابه که شد من تقاضای ماییست 5 علمای کرام 5 رو پیمه ده پنج افغانی میتونی می جمعیت سلایی رو چاپ کرده اکس چون سیاپورست هست این هست یک روز علمای کرام رو بخانند و یک روز در نماز خود به جمعه خود در از صحبت بکن پنج افغانی میتونی جدو یکمی ملک مسلمان میشه با چی مسلمان میشه بایدانستان قرآن از و مسلمان میشه خیچور در افغانستان مردم کافر میشه چرا در افغانستان مردم کافر میشن و خاطر که در افغانستان استعمار برای ما تلویزیون های زیاد ساخته. استعمار برای ما وقت نمی که ما قرآنا بخوانیم در متر و در مکتب و در آیسکن فروشی و و هر جای باید بر از این موسیقی و ساز و رخت باشه تا جوان مسلمان فرصت ودا نکنه که در مجلس قرآن بشینه. یک دانشمند دیدی اروپایی میگه، میگم من اولین آیه قرآنی که خواندم، الحمدلله رب العالمین مسلمان شدم. آجت نشد که من دومی آیه قرآن بخوانم. از برای خدا. ما خب قرآن هر رمزان پنج مرتبه و ده مرتبه ختم میکنیم در مسجدهای خود ولی در شخصیت ما هیچ تاثیر نمیه اونمو تویا نگرفتن در وطن ما رواج است اونمو دختر فروشی رواج است اونمو که خدا میگه قصاص ما میگیم نیباید دختر رو بد بتیم در وطن ما رواج است اونم کوفر در وطن مارواج است اونم دختر و بچه رخ در وطن مارواج است در ماه مبارک رمضان قرآن عظیم و شان ختم میکنیم و پیغمبر خدا میگه رب این یقره القرآن و القرآن یلغنوهو بسیاری از کاری های هستن بسیاری از کسای هستن که قرآن میخوانن ولی قرآن سرشان لعنت میفرسته که لعنت خدا سر تو پدره که میخوانی که پیغمبر خدا میگه که خدای عزواجل گفت سلاستون انا هم سی طایفه مردم است که در روز قیامت خدای عزواجل دشمنشان است یکی این جمله کسایست که انسان زنده را میپروشه دختر پروش کسی که تو یا سر دختر خود میگیره سی لک و چار لک میگیره از پیسی ازو به هج میرا دونج صدام میکنه که لبوی خدای پاک برش بی گلعنت گل خدای سرتو از پایس مردار به پای من ای لا تکبیر ما قران نمیخونیم به معنای قرآن توجه نداریم از این خاطر قرآن در شخصیت ما تاثیر تاثیری نمیکنه کسی پدرش مورده بود ما به قاطر خفوایی که در افغانستان زیاد میشه برای تان ببینید ببینین در قرآن میگه وننزلو الزِّلُو خدا های عزبا جل میگه وَنُونَ الزِّلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُن لِلْمُؤْمِنِينِ کرده خوب گوش بگیرید. خوب گوش بگیره کسایی که رشوت میخورن باز ختم میکنن خوب گوش بگیره کسایی که دختر خودم میفروشه باز ختم میکنن خوب گوش بگیره کسایی که فساد میکنن باز مگه می ختم میکنن خوب گوش بگیره کسایی که شراب میخورن باز قران ختم میکنن خوب گوش بگیره کسایی که از حرام تغذیه میجه باز قران سرش ختم میشه که خدای عزوجل بر از این مردما چی میگرد خداوند میگه که و ننزلو ما نازل کردیم من القرآن از قرآن از مشان شفاق, شفاق و رحمت همچان رحمت در قرآن هم و هم رحمت است یک مرتبه سرسخترین مریض الحمد لله رب العالمین بخان ولی با ایمان بخوان با یقین بخوان که با, با, با قرآن ایمان می یک للمؤمنین برای مؤمنان خب کسایی که ظالم هستن یا سرشان قرآن بخوانیم سر قبرش ختم کنیم قرآن شریفه سر ظالمان سر رشوت خورا سر وطن فروشا رسود خورا برای زینا که ختم کریم چی میشه؟ میگه ولا یزید خدای عزبا جل میگه ونو نزلو من القرآن ما هو شفاع و رحمت للمؤمنین از برای خدا اینجا ساب نشین توقف نکنین آیت تکمیل بخانین و ترجمه بکنین ولا يزيد ظالمین الا خساره بر ظالم خساره هست بر ظالم خساره هست باران که در لطافت تب اشخلاف نیست در دشت لاله روید و در شورزار خست اینمی باران اگر در اینجا در باغ ها گل ها می رویاند در کوچه های شوربازار گندگیست قرآن شفا و رحمت است نه بره خورد خور نه بره دوز نه بره نه وطن فروش نه کسی که غلام امریکاست نه کسی که غلام روس بود امروز غلام امریکاست بر از او چی هست؟ بر از او لحنت است بالای از او قرآن غضب است بالای از او قرآن لعنت خدا را نازل میکرد چون ولا یعید ظالمین الا حسارم ما خدا چرا فریب نتیم؟ خور خدا فریب نتا دروغگوی خدا فریب نتا خائن خدا فریب نتا دشمن افغانستان خدا فریب نتا وطن فروش خدا فریب نتا که قرآن برای ما هم رحمت است یک قاری صاحب بود یک کسی پدر یک کس مگه بسیار سودخور رو خور بود C'est trop de choix ازود زمین میشب بر شکلی از کا بر خود بگی از او مثلا دیوال اولیش پس به وقطش داوا وبلکر عامی نفره که زمین ظیر دوزی کرده بود مامال ظیر رو دزدی کرده بود این مرد م مرد مردار شد مردار شد و چهشلو که حال که پدر ما مرده بر ما که پایث کمایی کرده بود به یک کار دیگه بکنیم یک کاری سر بیاره به کاریصد و امیر دانی سر قبل پدر معظمی خوفتن تا وصبح یا ختم به کاری سر سا گفت سعیز بر؟ خاری سر قبل از 6ش اوضوله ن شایدام و جیم واس قطام کشین س کلاه پیشش کل رو کرد وقت س این که بچه خست اگر خواده خاا می بینن بعد خ خاام می بینه او روش خونا جاریدمی کلکقدلت خوردهلت خورده برش میگه که بچه ب مگه چی میگه؟ اگر چطور از نه خاری خوررا از سر ق که بخوان و بچه موز بی چرا به خاطر از اینکه ار قرآن که میخواد بهجوری ما ملائکه assistant لعنت خدا سر رشوت خور دف بزنش رشوت نمیخوری لعنت خدا سر دروغ گوی بزنش به وی قاری بر از ملائکه یک یک آت خوانده رو بالا خوانده بیت زدن میرن از خاطر قرآن وقتی با وقتی که مجلس قرآن میشینیم باید در شخصیت خود تغییر بین آیا قرآن برای من رحمت رحمت است؟ آیا من مؤمن حقیقی هستم؟ و آیا فریبکار کر هستم؟ او کسی که خاتم میکنه در ماه رمضان کاری صاحب قرآن برش قرآن میکنه و باز بعد از ماه مبارک رمضان در آروسی خود دین این منطقه هم آمیش نبینم وقت پروی کسی نداریم. یک روز, میمان و روز و صد روز صد روز دواعی برایشون میگیم حتی جنایت کارای وجود دارن که علمای خود از مسجدها ها میکنن با خاطر از دیکه عالمش برای گفایت قرآن تفسیر کرده که در آرزویی دختران رقصن. دارو سید بچه را نرخصان. وقتی که کار کرده او از مسجدش کشیدن این نفر پاید بفهمه که و لا الا قرآن دشمن عزیز قرآن در قبر سرش لعنت میکنه قرآن زندگیش تبا میکنه قرآن در روز آخرت ایره تبا میکنه و خاطر که اینمی انسان بیوجدان عالم خوده از مسجد کشیده که عالم مخالف نظر ما برخلاف رواج مگه ابزادم اصل نیستم تو بابا چی اسم خوشنیدیل باید این نفرا بفهمند و باید ای انسان ها بفهمند که قرآن ولا زید ظالمین الا خساره تو که اصلا نداری که حکم خدا را از دان عالم بشی بشنوی تو خدا مسلمان میگی تو که اصلا نداری که آیت قرآن برای تو عالم تفسیر بکنه که تو عالم دشمنی میکنی عالم برای تو چی گفته عالم صرف بر تو کار الله و قوله رسول گفته آیت قرآن تفسیر میکنی و باز آمده گفته مولوی سعد بسطره تجمع کو خاطر که در مسئله روز جمعه مخالف اندشه ای ما گفت زدی برای ما این که تو متوجه ای ما بود آلت که ای متوجه تو هست تو خودت بفهم که تو چقدر مریض هستی. در دیگه دنیا مردم با یک آیته قرآن مسلمان میشن ولی ما روز و روز در افغانستان چرا کافر میشن چرا اولاد ما کافر میشن چرا فرزندای ما کافر میشن این دید ما و پدرها هستن که بر از اینا تلویزیون میخرین در از اینا فیلمای ایندی و فیلمای آمریکایی و های کج تمام از چم تا واسو بر شان چالام میکنین در با مسجد رابط اولاد خودا قطع عالم خدا اخطار که اس کو دواری از نزنی، عشکو که در باری ساز سازگاد نزنی، عشکو که داری رخانده دخترها و فسرا گد نزنی، ازش که داری ازی که ما مزه مال زمینای مردما دزیم میکنیم گد نزنی، عشکو که داری اختلافات کسی که خرد مال دیگر آرام میکنی، در زمین کسی دیگره را که خرد کنی، در اونجا تاروز که نماز بخوانی نمازت قبول نمیشیم. دیگر اداره مختاران با کوران رجوع بکنیم در رجوع با کوران. این است که به حافظای قرآن خود به حافظای قرآن خود احترام قرار شد بطیم علمای برای خود و منعیس خود بپذیریم و گفت از انا رو یک یک و مقام از را عالی فکر میکنیم. قومی که عالمش عزت نداشت و قوم به عزت از پیش خدایی عزت قومی که قال الله و قال الرسول بر مقابل رواج خود قرار داد و رواج برتریت داد این کاول دشمن خداست اگر می خواهیم دوست خدا باشیم قرآن عزیم و شانه بفامیم اگر می خواهیم قرآن و شانه بفامیم در پالوی دیگر در سا و خود سعی و تلاش بکنیم که زبان قرآن بر اولادای خود یاد بتیم متقاضا میکنم از علمه اکرام از حافظ قرآن که در پالو یه در مدلسای هفظ قرآن دارن اده روزانه در تقسیم موقعات خود نم ساعت هفت بره زبان عربی برنامه داشته باشند. برنامه داشته باشم نم ساعت بره حفظ قرآن نم ساعت بره ترجمه قرآن اگر ما برای ترجمه قرآن برنامه نداشته باشیم اگر ما برای فهم قرآن برنامه نداشته باشیم